به ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به شکر پادشاهی ز نظر مران که دارا ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناغم مگر آن شهاب ساقب مددی دهد خدا را مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت زفری به او بیندیش و غلط مکن نگارا دل آلمی بسوزی چو بر فروزی تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان به نوازد آشنا را چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی دل و جان فدای رویت بنما عزار ما را به خدا که جرعید تو به حافظ سحر که دعای صوبگاهی اثری کند شما را